بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة الله على سيدنا محمد وعليه الخاطرين الحمد لله تعالى نحن قرأنا في الدرس السابق وفي يوم موقع دروسا من هذا الكتاب و من الوحده الاوله الى الوحده از ساده سه از سابعه عفون خدا شکر که در جلسه قبلی و در درس قبلی تعداد از درس هایی که در این کتاب نهفته هست رو با هم مرور کردیم و تا وحده هفتم رسیدیم درست شد؟ تا بخش هفتم رسیدیم اليوم نحن نده من الوحده از إلى الدرس الثلاثين الله از آغاز وحدت هفتم شروع کنیم تا درس سوم شاید برسیم ان شاء الله تعالى چه چه هست؟ اس القراءه والعلم الدرس السادس والعشرون وال الحروف بی حرکتی ها قویله و القصیره و سکون نحنو درس سابق علمنا و عرفنا ان الحرکت اما قصیره و اما قویله در درس گذشته خوندیم که حرکت یا کوتاست صدا یا کوتاست و یا سشیده هر کوتا می شون چند است؟ سه تا سه ستاست درست شد؟ حالا در این قسمت یعنی در همه درس 26م از درس 22 حروف با حرکت های طویله و قصیره و سکونش در اینجا نهفته شده اومده یعنی در عالم واقع این کلماتی که در پیشوره ما در این درس هست کلمات تمرینی است که ما می توانیم هم حروف را بر اساس صداهایشان تمرین کنیم که از این ببعد در گفتار خش دوچار خطا نگردیم درست شد؟ مهم این نیست که ما این کلمات رو میتونیم بخونیم، اگر نتونیم بخونیم که به اینجا نمیرسیم دیگه مهم این است که این کلمات را بر اساس صداهایشان در بیاریم درست شد؟ حالا اگر از خانوم از ما مصطفیهی بپلسیم درست شد؟ یا ساری. از آنکم شما درست این چی هست چه میگه این نحوه خواندن اینجا میگه هجا میگه دیگه دارست به شکل روان بخوان اینی مهم است که ما داریم خب لحظه سر کن. این نحوه خواندن به که درست هست. به نظرکی درست درست نیست؟ درست نیست؟ آه. از نگاه تذبیده درست نیست. از که مظهر کنی خانیم و آه ها. آه ها. مثلا خب. آه. آه. آه شما پس بخوان یک بار. ما هست؟ احا. بسم الله الرحمن آ نکن. اون نکن. این نکن. احسن. این نحوه خواندن درسته؟ آ، اینش خوبه دیگه درست شد. تمدید. خب یک خانم دیگه از این طرف بخونه. خب بخون شما بخون. از هر جای که از هر جایی که میخونیش کار نداره. از آکیلونه بخون. آتغریبه علی الحروف بحركتایها و سکون. بسم الله الرحمن الرحیم. حاکرونه، خایدونه، صابتونه، حمیدونه، واحدونه، سابقونه درست، خیلی عالی، سه خب، پس حالا متوجه شدیم نه؟ باید جاهایی که کشیده خوانده بشه بیکشه مهتمه حالا یک کشیدن در قراعت هست که در قرآن کریم هست در اونجا خیلی رعایت میشه، درست شد؟ در گفتارهای روزانه اگر زیاد رعایت نشد اشکال نداره به اندازه که در قرآن کریم ما رعایت میکنیم درسته؟ ولی به هر حال نباید کوتاه کشیده یا کشیده کوتاه بشن درسته؟ ویلا خب دیروز یاد شد که معنی کلمه ممکنه عوض بشن سعید شد؟ خب پس میرهیم روی جلسی بعدی، الابجدیتو تو به جمیع اصواتها خب در جلسه قبلی هم هم حرکات طویله و قصره و سکون بود اما کل اصوات نبود دیگه، صوتهایی که ما داریم یا حرکت هست از نوع طویله و قصره یا سکون هست، یا شدت هست، یا تنوین هست اینا انواع صداهاییست که هجا از خودش می تواند داشته باشه. سعی شد؟ حالا این الابجادیت و العربیت و بجمع اصواتها خب یک نفر بخوانه؟ بله بله بخوان یک نفر بخوانه؟ بسم الله الرحمن الرحیم عجب حوض اليمه صح فاش فاش ستح ستح ستح هر هر خوب هر که خوب خوانده بتونه باید جایزه بيديم این خواندنش سخته واقعا نیست؟ خب، آن درسته دقیقت میکنن، در همه ابجد خب، در همه ابجد همه حروف هجا یا علف با درش هست منطقه با همه اصواتش تقریبا، تقریبا با همه اصواتش البته چی نداره قریب؟ قریب نداره، چه میگن؟ مردی را منتها اون چه که در اینجا دقت کنیم ما در فارسی یک شماره یک دو سه چار داریم درست؟ در عربی هم شماره یک دو سه چار داریم یکی هم حروف داریم الف ب پ ت سه اونطوری ترتیبش هست ظاهرم در عربی ترتیبش این گونه است. الف با جیم دال ها واو ز ها قا یا درست خوب دقت میکنین الیف شماره یک ب شماره دو جیم شماره سه دال شماره چار تا آخرش چند میشن؟ آخرش هزار یعنی حرف غین شمارش چند میشن؟ هزار پس حالا فهمیدیم ما که این حروف در عوض کدام عدد گذاشته میشن؟ آه. فهمیدیم دیگه نه؟ همهگام خیلی عالی و مدلولات ها به ترتیب مدلولات یعنی دلالت شده هایش دلالت شده هایش به ترتیب بله دلالت شده هایش و ترتیب یک دو سه چار تا هزار هست تا اینجا فانیدیم؟ خیلی عالی حالا بیاییم درس بعدی، الدرس ثامین و العشرون الخروف لغیر القراءة الحروف لغیر القراءة، حرف هایی که قراءت نمیشه، احسان این حروفه که خانده نمیشه یا هم حروف ناخانهی که ما در تجویل فارسی میخواندیم، عبارت از خروف والی هست، درست شد؟ آره از حروف اولا نیست، خب اعلام نیست خب این حرف در کجاها خوانده نمیشه یا کدام قسمتا خوانده نمیشه ادا کان الحرفو کرسیان للحمزه علیف واو یا همی سی تا حرف خود علیف، خودی و خودی یا هنگامی که به عنوان پایه همزه قرار بگیرد خود علیف و یا خواندن نمیشه. نمیشه اما در عوض همزه خواندن میشه, میشه. فالفه، این فالفه، امزش چه خوانده شد یا علیف؟ همزه، همزه فعاد، همزه، و اشمان، درست شد؟ یبدعو، همزه خوانده شد درست شد؟ خب این بیان چی رو برای ما میگن؟ برای ما اینه میگن که اگر در جای عربی رو این چونینی کلمه دیدی هر را رو با هم نخوانیم درست شد؟ هر دوتایش رو با هم نخوانیم یا اگر تنهایی خواندیم دیگه اونجا گیر نکنیم که چرا یک حرفش خواندن نشد این از حروف نخواناست دیگه درست و همچنین در کلمات این چونینی وقتی مینویسیم درست بنویسیم فواد را فواد نوشتن نکنیم درست شد؟ یبدیعو را نکنیم فعلفه فاللف فالف نکنیم دیگه درست شد؟ همزه باید نوشته بشن کرسی به معلی پایگاه یا نشیمنگاه ببین حمزه بالای علیف قرار گرفته پس علیف در آلنگاقه اون محل نشستن حمزه تمام فاهمیدیم کلگیم خیلی عالی پس در هنگامیه که علیف واو یا پایه و کرسی حمزه قرار گرفت خوانده میشه یا نه نمیشه نه. نه دیگه کجا هنگامی که پایه و کرسی الف مدی قرار بگیره که اون فقط واویا قرار میگیره مثل صلاه و یتزکا درست خب اگر ما شما به شکل فارسی بخونیم یتزکی ممکنه بخونیم درست این در حالی است که یتزکی نیست دیگه کاست الف خوندن نیست. آره. اینجا نویشتنش یا هست. اما ادایش چی؟ آه. به شکل هست. اونم اونها مالی مادی. دگه دیگه وقت علف بود خواندن نمیشه. مثل ضربو ببین این کلمه زربو یا کلمات دیگه کتبو، درسو، فعالو خیلی از کلمات دیگه اینچون اینه بعد از واو علیف دارن یک علیف اضافی دارن خواهم اون علیف نوشته میشه اگر نوشته نکنیم ورا را زرباو ممکنه بخونه درسته پس علیف را باید بنویسیم چون همه علیف و واو بیانگر جمع میشه زربو یعنی زدند درسو یعنی درس خواندن درست شد؟ اینطوره اگر الیف را ننویسیم کلمه ما اشتباه خوانده میشه درست نمیشه الیف را می ولی خواندن نمیشه, نمیشه. نمیشه. اونیس را ما نمیتهمیم متاسیب کنیم زده و معنی زده زده اند زده اند خب دیگه الیف وشل مانه در خلق نه اون الیفی که قبل از لام از سماوات هست الیفی که قبل از لام از سماوات دیدیم یا نه دیدیم؟ صحیح شد؟ اون الیف وشل و خواندن نمیشه اینا رو بلدیم این دیگه نه؟ آره؟ خیلی خیلی دیگه کجا الیف و لام شمسی؟ ما دو چیز داریم. یکی الیف لام قمری داریم. یکی الیف لام شمسی داریم. انشالله شمسی و قمری رو خود میدانیم نه؟ داری. آره؟ چند نفر نمیدانه؟ شما نمیدانی؟ خب ببین الیف لام شمسی است که خود الیف ولیم خوانده نمیشه ولی الیف لام قمری لامش فقط خوانده میشه. مثلا نگاه کنیم وقتی میگیم از شمس اینجا شمس لون کنده شد؟ نه نه شد. بلکه درشین جنگ خود. درست از شمس. اما اگر وقتی میگیم القمر القمر که تول رو نشندیم دیگه بلکه القمر مشنیم صحیح شد؟ العلم. ببین؟ علم که نمشنیم نشندیم تا بلکه بلکه العلم شندیم درست؟ اینی حروفه که خودشان اون خوانده نمیشه بلکه باید لام را بخونیم او الف لام قمری هست مانند ال قمر که خود قف خوانده نمیشه بلکه لام را میخونیم درست ولی حروفی که خودشان خوانده میشه مثل شین مثل الشمس الف لامش رو میگن الف لام شمسی ما لام قمری شمسی نمیخوانی خونیم خلق نست سماوات در خلق نست سماوات نگاه کنین الیف و الام خانده شد؟ نشد پس این الیف و لام که خانده نمیشه در از حروف شمسی است و در حروف شمسی الیف و لام نمیشه. نمیشه. نمیشه یعنی از حروف ناخانه تا اینجا تمام همگی فهمیدیم؟ خیلی عالی و آخرین قسمتی که حروف والی یا حروف ناخانه هست واو مدی هست مانند اولو مانند اولو در اولو نو واوی که بعد از الف قرار میگیره اون منظور است اولو اولی اولائک سئوریکم اولائ اولاتی درست شد عنجاها واو آمده ولی ما ادا نمیکنیم یعنی نمی خوانیم شد؟ برد. پس حالا اگر حساب کنیم چند جای میشه؟ کرسه همزه یک علیف مردی دو سی. علیف جم سه شش, آه. شش. آه. آه. علیف واسل علیف لام شمسی و مردی در این شش مورد این قروف والی خواندن نمیشه. نمیشه خوب دقیقی یاد گرفتم یا نه؟ با. حتما ان شاء الله خوب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال قال هي عصا علیها عليها واهوش بها على غنمي ولي فيها معارب اخرى در این عصای و همچنین قال حرف سیناخونه داریم یا نداریمش؟ در, در اتوکه او هم حلیفش انجام نمیشه همزه میشه، هم واو انجام نمیشه همزه میشه. درست آره یا اجرا نمیشه. متوجه شدیم؟ متوجه شدیم یا نه در یعنی از این بود اگر قرآن رو باز کنیم میتونیم تشخیص بدیم حروف نخانا کجاست؟ انشالله خیلی و الدرس تاسع و اشباع های بانیر اشباع و هاء زمیر اشباء را کسی میتونه تعریف کنه در تجوید خوانده باشین باید اشباع در لغت به معنی سیر کردن نبود آدمی که سر باشه میگه مدش؟ سر مدش؟ باشه میشه میگن شبقان وادام میگه سیرم میگه شبقان در عربی ها در عربی اگر مثلا اگر بگید آه آره. اگر من سیرم انا اگر بگیم من سیر هستم میگه که انا شبقان ها درست شد انا شبقان ولی اگر گرسنه نبودیم میگم <تصحیح> انا ج... چه بود انا جوعان درست شد؟ تشنه توش نبودیم میگیم انا عطشان انا شبان انا جوان عطشان صحیح شد؟ عطش خود یاد دیگه؟ اون تشنگی رو میگه خواهم؟ گروسنگی رو جوان میگه؟ سیری رو شبان میگه این شاد است. که پاییز دلی موتی، از ربيع داغ رفتمی، لغاتیه این شاد است. از پاییز که دلیل لغت این این خیلی خوبه. بعد از این کتاب باید اونطور کنیم. حالا در این کتاب شاید چون که اونطور کنیم. دیگه خیلی خوب رو بمینیم یک حرفیست. شایلا تلاش کنیم سم. تا هفته بعدی یک تخته آماده بشه. خب سر شدیم یا نه؟ اشباعهای زمیر اشباعهای زمیر یعنی چه؟ یعنی سرخوندنی یا سر حرکت دادن های زمیر های زمیر ممکن حرکتش کوتاه باشه وقتی ما کشیدیم سر میشه دیگه درست ها اینطوری اش اه اشباع ال تعریف کرده خب اشبای های ضمیر یعنی چه یعنی اشبای های ضمیر بر مد مد هم کشیده رو میگه دیگه درست صدای کوتاهش تبدیل به چی میکنیم به مد، به کشیدن سن شد؟ اشباع الهای علال مد سر خاندنها بر مد تمام تا اینجا؟ آره؟ انشاءالله مثل چه؟ مثل فیوباعفهو لهو فیوباعفو فیوباعفهو لهو اونهای بعد از فارو میبینین که پیشروش یک یک واوی کوچگگ هست آم. اون واو واوی مدیست دیگه در عالم واقع منطقه نه واوی که در اصل کلمه وجود داشته باشه اونو هایشه های زمیره ما های زمیر رو اشباع میکنیم برای این که متوجه بشم این ها های اشباعی هست پیش یک یک واوی کوچگگ میگذارن در قرآن کریم همچنین چیزی هست بله های زمیر صحیح شد نه. همگی فهمیدیم؟ برد. خیلی عالی. هیچ کس چیزی نمیگه حالا دیروز صدای شما یکی میگفت خیلی سرسدا میکرد. امروزش صحبت نمی جواب بدن فهمیدیم یا نه؟ خیلی خوب. خب دقت میکنین چی میگه؟ های زمیر را در در قدم اول اینطوری فرض کنین که دائم اشباق میشن دائم اشباق میشه یعنی در هنگام پیش باید خوب پیش بخونیم زبر خوب کشیده یا مدی بخونیم زیرش هم اونطور خوب؟ مدی پایین بخونیم، درست؟ آه. ها، این حالی میگه الا مگر در چند جای های زمین اشباق نمیشه الا یعنی مگر الا ان ما قبل ما قبلها قبل از های زمیر مد بود آنجا های زمیر اشباع نمی نمیشود, نمیشود. درست شد های زمیر همجا اشباع میشه مگر اینکه ما قبلش مد باشد مانند فیهی در فیهی نگاه کنین های شه های زمیر هست اما اونجا اشباه نشده چرا چون قبلش یای یا مددیست قبلش مد سکون باشه با شد؟ آها سکونش هم رفتی که <تصفح> درست شد؟ یا اینکه حرف مد باشه این که سکون باشه مثل مینهو. مینهو هم های شه های زمیر هست اما اشباه نمیشه چرا چون که قبلش ساكين حرف ساکن یا مخالفت سکون قرار داره درستن تمام تا اینجا خیلی عالی او بعدها شدتون یا اینکه بعد از های ضمیر حرف تشدید باشه مثل نصره الله نصره الله اینجا این نصره های شیش نمیشه چرا <متحدث> آ روی شد پیش است یا بعد حالی بعدش بعد حالی شد بعد سعی شد آ خیلی حالی التدریب علی اشباع ها اضمیر اینهو که نبی حفیه اینهو اشباع میشه درسته؟ هل تعلم لهو سمیا؟ در شه؟ در شه؟ میشه درست شه؟ اصابه این اصابهو خیر نقمئن به اصابهو خب بقیشون هم همینطوری دیگه درست؟ و صل الله علی سیدنا محمد و آلها قادرین